الحمد لله الواحد الأحد الفرد سمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له سلملک ولم یکولکو ولیون من از سل و کبر و تجبیران فالسلات و سلام علا خیر و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین عبل قاسم المصطفى محمد صل الله عليه و آله و سلم سیما ناموس ادار و امام لآخر خود جتب ن الحسن العسكري المهدي ارضانه تراز مهديه ارضان علنا الله انه ادای مجمعین منالان الا قیام یوم الدین خوب عرائض ما در این شب های ماه مبارک رمضان یه شرح کوتاهی بر مواعظ و فرمایشات دراربار امیر علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبا علیه السلام در نه جلبلاغه نامه 31 و, و شب های گذشته عرض کردم که این نامه سراسرش مطالب حکمت‌آمیز که حضرت امیر علیه السلام برا فرزندشون تدارک دیدن حالا ما دیگه فراز پایانی این نامه هستیم دیگه یه چند شبی هم بیشتر از عمر این جلسه باقی نمونده یه چند جمله دیگه از این نامه رو تو این ها به حول و قوه خداوند یه شرح کوتاه ارزم میکنم دیگه به همین اکتفا می‌کنم دو جمله امشب آماده کردم در دنباله این فرمایشات جمله اول این است که حضرت میفرماید که انما لکه من دنیا ما اصلحت بهی مسواک میفرماید که از مال دنیا اونیش مال توی که خرج آخرت کنی بقیهش مال تو نیم این نما لکم دنیا آدم هر چقدم ثروت داشته باشه از این ثروتش همون اندازه بهره میبره که اینا رو خرج آخرت میکنه به قول قرآن برا آخرتش پیش میفرسته. بقیه دیگه مال اونی خوب این مال دنیا میاد میره بعضی ها از خودشون آلاف و علوف باقی می اما همه اینا را اغلب ورسه بحرشو میبرن حساب کتابش مال اونه ایچ یعنی سودش به ورسه میرسه چوبش و کتکش و اینا مال اونیه که از خودش باقی بذاشته آدم از مال دنیا همونقدر بهره میبره که خرج آخرتش میکنه خود امیر المومنین اینجوری بود به خاطر این عزت امیر هیچی از خودش عرص نذاشت با اینکه که ثروت زیادی حضرت امیر تولید کرد یه شب براتون گفتم چقدر مزرعه چقدر قنات چون هم زیاد کار می‌کرد هم باهوش بود هوش سرشار قدرت بدنی بالا خاطرین این حضرت ثروت زیادی تولید کرد اما همه رو وقف کرد همین روزا امام حسن مجتبی اومد الان هست این خطبه یک خطبه ای تو این مسجد کوفه خوند گفت کل چیزی که از پدر من باقی مونده 400 دیناره درهم 400 درهم 37 تا 38 تا اینا اولاد داشت به هر کدوم 10 درهم رسید که کرای خونه کرای ماشین دادن برن خونه ها هیچی از خودش باقی نایست این ازا این تعمیر منطقش این بود میگم این روزی من بعد خرج آخرت هم کنم امام حسن هم روزی شا هر میخواد خرج امام موساین هم روزی شا هر میخواد خرج این روزی مال منه یه وقت مینه پدران نگران اولادشون هستند اتفاقا روزی اولادش سی برابر خودشه ما چه میدونیم شاید شاید همین اولادی که شما نگرانش هستی صد برابر شما روزیش باشه پیش خدا مثلا یه چیزی برای اولادش میذاره ثروتی که خدا به این اولاد میده اصلا اون پیشش پاپاسی هم نیم مثلا این, این بالاخره روزی شماست اونم برای خودش روزی دارد به هر انسانی یک قسمتی پیش خدا سهمشه اینا مساوی هم نیست البته ان الله يَقْسُ و تُرْرِزْ و یقدر بعضی روزیشون فراخه بعضی ها تنگه ولی هر کسی یه روزی داره دلش میخواد اینا هر جای. حضرت امیر فرمودن من اینقدر سهمم همه خرج آخرت میکنم امام موسیم هر جا دوستاش رو خرج دخالتم امام نمیکن حضرت عباس هر جا دوستاش ببره روزیش رو خرج کنه ولی اینی که سهم منه من آخرت هم باش آباد میکنم. این توجه ببرمت. میگم تو از روزی که خدا بد داده همون مقدار بهره میبری که آخرت تو آباد میکنی. قرآنم میفرماید چون قرآن یه سبکی داره در تشویق انسانها برای انفاق. من یه بار جمعوری کردم دیدم شاید اینا مثلا به سی شیره در قرآن برسه اینقدر خدا به شیوه های متعدد مردم رو تشویخ کرده که آخرتتون رو بسازن دنیا تموم شده اصلا دنیا هدفش اینه که آدم از این فرصت استفاده کنه و آخرتش رو بسازد یکیش است که الان میخوام بخونم یه شیوه اینه خدا میگه و ما اندکم ینفد و ما اندالله باق این یعنی تشویق به انفاق میگه هر چی برای خودت بذاری کنار نابود میشه اونی که برای خودت میذاری کنار نابود اونی که در راه خدا میدی اون باقیه رو اون حساب منو که تو بانک میذاری میگی مال خرج ماه آیندم یا مال سال آیندم اون نابود میشه اما اونی که مسجد باش میسازی اون باقیه این منطقه امیرالمومنینه که افتارشو میده یتیم میدونی چی میگه؟ میگه اگه خودم بخورم نابود میشه ولی به یتیم بدم میمونه حالا ما افتاری خوردیم اومدیم اینی که خوردیم دیگه نابود شد اما اگه ما میتونستیم از گلومون بزنیم اینو بدین یک گرسنه بخوره اون دیگه نابود نمیشد اون شب اول قبل میمد دست ما رو میگرفت ولی ما نمیتونیم ما عمر خرج خودمون میکنیم میگیم کوفت بخوره یک میکنیم, میکنیم ما ما سبزی خوردنش هم نمیتونیم میدارم واسه بگی آقا الان سبزی تو بده میگه نه ها سبزی نباشه اصلا من فلجم میگه حالا سبزی خوردن کرد مثلا نوشابه مثلا ما هیچ نمی... ماست تو بده میگه نه نه نه بذار باشه بذار باشه میگه ببین توجه کنید من... یه چیزی در راه خدا بده نمیتونیم برای اینکه اینا رو نمیفهمیم چجامیکنیم حتی امین سه شب این کارو کرد با آب افطار کرد خب نمیمیرم که اذیت میشم نمیمیرم ولی این میاد قیامت دست منو میگیره طبقان همین هم گفتن دیگه. به اینا گفتن اخو شما چرا از گلود میزنه میده یکی دیگه بخوره؟ اینا میگن انا اینا یه سبک دیگه قرآن در سی تا شاید بشه. بشه هم بیشتر باشه. ما سی تا شو بهم انا نخاف و منربنا یومن عووسن قمتری را میگن چرا این کار میگن ما از خدا میترسیم کی؟ میگه برای اون روزی که اون روز عبوسه به هیچ که روی خوش نشون نمیده یعنی ما از قیامت میترسیم میگیم این بیاد اونجا دست ما رو بگیره این نان نخافه ما میترسیم از پروردگارمون چه روزی اون روزی که عبوسه و به هیچ روی خوش نشون نمیده این دور سبکی که بخاطر این از قرآن استفاده میشه که روز قیامت شب اول قبر هیچ عملی مثل انفاق دست دادمو نمیگیره سخت هم هست انفاق سخت الان به بعضی ها مثلا بگی پیاده برو کربلا میره ولی بگی همون یه میلیونی که میخوای خرج کنی اونو انفاق میگه نه من انفاق نمیگنم پیاده از نجفت و کربلا میگه میگه میخواید بسره برم <تصفيق> <تصفيق> بسید من انفاق میکنه میکنم انفاق خیلی چیزی هر هرچی سخته روش خیلی حساب کن خیر الامور احمد و ها بهترین کارا اونایی که سخته اتباقه رو این خیلی حساب کن که آدم به زحمت میتونه این کار رو انجام بده به خاطر بازم یه سبک دیگه یه قرآن چون میگد انفقو چقدر سبکا و زیباست انفقو مما رزقناکم اصلا ما که هر وقت آیات قرآن رو میخونیم مفت میشیم از زیباییش انفقو مما رزقناکم خدا میدوند چقدر لطافت تو این کلامه اولا میگه مال خودتو که نمیگن بده اما که من دادم بده می میگه که مال تو که نیست لاگردار من دادم دیگه چه مم ما رزق ناکوم. بعدم میگه همه‌ش هم نده یه جزئیشو بده واجبه ببین چقدر داره یه وقت میگه انفقو ما رزق ناکم هر چی دادم بده نه میگه مم ما میگه آقا 100 هزار تومن دادم هزار تومانشو بده دیگه می میگه می من یه میلیون دادم ده هزار تومنشو بده دیگه من که نمیگم نصفشو بده من میگم یه مقداریشو بده اینم حضینه است شما همونطوری که لازم داری لامپ برای خونت بخری یه لامپ هم باید برای قبرت بخری نخریدی بخر میگه چرا خونت اگه لامپش میسوزه میری یه دونه میخری ولو تو هر زحمتی باشه میخریم میگه چاره اینی بخریم دیگه میگه نمیشه که دستشویی ما لامپ نداشته باشه همام ما لامپ نداشته باشه خب قبرت میشه لام نداشته باشه ببین همونطوری که یخچالتون خراب میشه بعد برین تعمیرش بکنین قبرتونم میدونه یخچال میخواد دوتا تا خونه‌ای از دین برای اون خونه هم یه دونه میخواد فرش میخواد لامپ میخواد چراغ میخواد اینا هم بعد تو سبد ازینه‌هاتون بیارین ها الا خزینه‌هاتون خیلیه اینا هم هست دیگه انفقو مما رزقناکم میگه از اونایی که من فرابون روزیتون کردم یه کمی چه ببین من قبل ان یاتیع اعادکم الموت خیلی واقعا اون سبک عالیه این کلمات خدا چه جوری میتولید جور کرده میگه عجله کنید مرگ میاد سو. قبل از اینکه اسرائیل بیاد ببین <تصفح> من قبل میگه وقت اونچنانی هم نداریم چقدر وقت داریم آیون چقدر وقت داریم من آقا یه مقاله میخوندم یه بزرگی از عرفا رفتن دکتر دکتر گفت سرطان خون داری دیدم خیلی ناراحت نشد و اومد مثل هرگو بود شاگرد گفتن آقا خیلی که از مرگ ناگهانی که بهتر یه دفعه استقل بیمی کردیم خوب بود باز هنو وقت داریم خیلی ها است قلبی کردن سکته که در جا موند ما رحمدالله آروم, آروم آروم آماده میشیم دیکن میگن بعد از او هشت سال زنده بود چون اگه میترسید دو سالم نمیموند شیشمان نمیموند بعضی آقا از ترس میمیرند هنوز اجلش ننزیده از ترس هشت سالو میکنه شیشمان میکنه سه ما کونو مثلا است قلبی میکردیم در جا میموردیم الان خمسمون رو میدیم توبمونو میکنیم کارا رو جمع چورو میکنیم بعد هم همه باید بریم دیگه حالا به ما وقت دادن چراغم دادن گفتن که یه چند سالی فرجه دارید. بعضی رو که این امانم نمیدن اصلا سالم سالم سکته میکنه سی و چند سالی چه آقا میکنه اون من باید چقدر شکر خدا رو بکنم که اینجوری دارم میرم بس دیگه چجوری برخورد کنیدی که ببین لیوان اون قسمت پرش رو ببینیم اینه همش نعمته قسمت خالی شو ببینی وحشت میکنه گفتیم چقدر فضیلت توینه اینه من چقدر برفری دارم به اونایی که ناگهانی میمیرن در جا میمیرن مثلا فرصت هیچ دوبه هم ندارد من قبل ان یعتی احدو کم الموت میگه میگه عجله کنید وقت اونچنانی هم نداره قبل از این که مرگ بیاد سراغتون خب اگه مرگ بیاد سراغمون چی میشه یقول <تصفيق> همه رو میگه یقول لولا اخرتنی الى عجلن قریب اون موقع میایین تو قبل به من میگین که خدایا یه کوتاه کتاب ما بده اجلن چی؟ قریب عجلن قریب یه مهلت کوتاه شاید اینا آقا 24 ساعت وقت میخوان شاید 12 ساعت میخوان شاید 1 ساعت وقت میخوان یعنی یعنی میگن خدایا نمیخوایم ایشو نوش کنیم ها چون 1 ساعت که نمیشه ایشو نوش کرد 24 ساعت که نمیشه ایشو نوش کرد ما نمیگیم که به ما فرصت بده ایشو نوش کنیم پس میخوای چیکار کنی فاصد دگه میخوایم بریم انفاق کنیم صدقه بدیم اونا فهمیدن که اونجا هیچ چیزی مثل انفاق دست دادمون نمیگید. بگی آقا من کربلا پیاده رفتم مثل این نیست. بگی آقا من ما رمضون تا صبح مناجات میکردم مثل این نیست. اگه اونا بود اونو می‌گفتن دیگه مثلا نماز شب میخوایم بخونیم، می‌خوایم ما رو روزه بگیریم، میخوایم ماه شبال روزه بگیریم. اینا رو نمیگن. میگن فصد دادن ما میخوایم انفاق کنیم. فاکن من الصالحین ما میخوام اینجا جز به صالحین باشیم از همین استفاده میشه آقا هیچ چیزی مثل انفاق دست با. اونجا بالاترین حسرتو میخورند که چرا ما مالمونو پیش نفرستادیم از مالمون بهره نبردیم آیا اون این کلامو باید با جواهر بنویسند جو ولی خب من دیگه قدرت بیانم بیش از این نیست نمیتونم لطایف این کلامو انتقال بدم میگم از مالت همون قدیش مال توئه که خرج آخرت کردی بقیه‌اش مالنی مال کیه اصلا باید گاهی مالنی مال برسه هم باشه قدین طاغوتی‌ها آقا مال انبار کردن به ورثه‌هاشون هم نرسید دولت گرفت به خدا اصلا مالنی مال اصلا ممکنه زلزله بیاد همه رو از زمین ببره اصلا ما نمیدونیم مالو من یه حدیثی از امیرالمومنین نوشتم هم نهج البلاغه از حکمت 335 اما آخرای نهج اینم هم نحجه امیرالمومنین است. امیر لکل امره این فی مالهی شریکان هرکی تو مالش دو تا شریک داره. الوارس و الهوادس. الوارس؟ بله. گایی ممکنه به ورثه برسه. گای ممکنه حوادس بیاد همه رجبه. مثلا ممکنه زلزله بیاد. ممکنه انقلاب بشه. انقلاب بودش یه حادثه است. اینا گنشته بودن برای ورثه همه دولت گرفت. رفتن از همان کجا رفتند؟ اما اونا از مالشون همینقدر بهره بردن که خرج آخرتشون دردن. اگه کردند. شما از مالت همینقدر بهره میبری که برای آخرتت میدی. اگه بکنی. بعضی هم تا زندن نمی بعد خودشون میگن بکنیم. بعضی میگه تا زندن آجا هم نمیتونم. اما تو وصیت نامه می نویسم نصفشو بدن که گاهی ممکنه می نویسم همه شو بدن بدهت نمی خوره آقای اونی که خودت می کنی داره یکی وصیت کرد نمی تونست گوه من مردم هرچی نخل من نخلستان من خورما داره خود پیغمبر بیاد بین فقرات حصیل کن مرد پیغمبر اومد وصیتو اجرا کند اعلام کرد تو مدینه هر کی فقیره بیاد این آقا وصیت کرده می اومدن سبد سبد می بردن گونی گونی می بردن آخر یه دونه خرمای گندیده له شده که له شده بود دیگه مونده بود هر اگه این یه دونه رو خودش میداد بیشتر بهره می برد تجاوب نکرد یه وقت همینم هم نمیتونست میگو میشورم خودم میخورم میگه میشورم خبا حالو رو بده بره دیگه میگه نه شب افتار خودم میخورم چون میدونیم کوزگر از کوزه شکسته آب میخورد دیگه اونی که نخلستون داره لها رو خودش میخوره میگه اینا رو که نمیخره میره میخونه چون من پیران دوز باشی یه پیران دست در بره کجاکوله در یاد میگه اونو خودم میبوشم بگه اونو من خودم میبوشم میگه این فروش دیگه نمیده حضرت فرمان اگه این خورمه رو خودش میداد بیشتر بهره میگرد این حواله کرده بعد من بدی چون دیگه حفظ که نمی میگه نیستم بدن چشم نمیبینم بدن اما تا نه حکی از مال خودش بده گاهی بعضی بچه های مشتی دارن برای باباشون خیلی خرج میکنن اتفاقا بیشتر گیر همین بچه ها میاد اما شما اگه تو همین رمضان آقا ببری کهریزک ندام هر جا که ضعیف و پابرهنه هست افطاری بدی ده هزار نفر رو افتاری بدی بگی سبابش مال مرحوم پدر اگر این عمل شما ده هزار تا سباب داشته باشه نه هزار و نه و و نه تاشو به شما میدن یه دونه یه چیز کچیکم به میدن میگن خدا رحمتش کنه اون به هیچ کس چیز آب دستش نبیجی بچهش مشدیه به این میدن به اون نمیدن ب... میدن به اونا به اون یه بحرین کمی میدن اکثرش مال همینه که داره قیاد میکنه الان شما اگه آقا امشب تا صبح صد رکت نماز بخونی بگی برای پدرم اگر این عمل شما صد تا سبا نود و نه تاشت باز مال خودشم یه آب که یه دونم به اون میدن میگن خدا رحمتش کنه تو همه عمرش یه بارم سجده نکرد این بچهش مشتیه که یه شب 100 رکعت میخونه اون که اهلش نبود همه آقا گیر اینی میافته که خودش میکنه ما بس ارزم تمام توی تو این قسمت رو میخوام یه دونه دیگه ام یه دونه دیگه بخونم ما اندکم جن فرد و ما اند الله هرچی که برای خودت میذاری کنار نابود شد. اونی که در راه خدا میده. مثلا این چقدر ما شهازاده داشتیم. اینا پولاشونو. همین هم چقدر شهازاده داریم تو امریکان دیگه. اینا پولاشونو بردن تو این اروپا. تو امریکا خرج فسخ و فجور کردن. اما این گوهرشاد. این اینم شهازاده بود. این اومد این مسجد و کنار حرم امام بزار سار. این چقدر بحره بود. اینو این بهرش رو برد یعنی همین جور دارن تو قلکش میفرستن شما چقدر اونجا نماز میخونند این قلکش بازه هی دارن میفرستن هی دارن میفرستن خب این بهره برد از این مالش بقیه بعضی نمیبرن از مال بعضی فقیرن مالشون برکت داره برکت آقا آقایون برکت زیادی نیست که برکت باقی موندنه یعنی میگن برکت الان این مال با برکت بوده که تا امروز باقی مونده تا قیامت هم باقی همین گوهر شد مال با برکتی بوده حالا بعضیا مال زیاد داشتن اما همه حیفه میل شده دیگه این نمیگن برکت اتفاقا اینو میگن بی برکت مال زیاد الان بعضی صد سال عمر میکنن هیچ اثری ازشون با نمیمونه یه سال مثل از زهرا عمر میکنه دنیا رو میبینه این برکت اینه برکت به زیادی نیست که تازه بیوی بی 18 سال علی از 6 شیش ماه دیوونه کرده همه رو آیون. با شیش ماه زندگی این چقدر برکت تو شیش ماه تو هم مثلا مرحوم کمپانی که برای خودش یه پهلوانی بوده اصلا. من همه چی تموم این میاد گردنش رو کج میکنه به این بچه شیرخار میگه به من صدقه بده من. <تصفيق> مثلا شما بین این بچه شیش ماه چه کرد این شیش ماه چه کرد یا مثلا میاد تو حرم هست رقعیه اینجوری گردنشو کچ میکنه به این دختر سه ساله میگه به من صدقه بده من یه دفعه براتون گفتم شاید تو جلسه شما گفتم من یه سوریه که بودن یه شب بودم ساکرم اونجا مثل ایران گفتن یه شب برم صفا کنم دو حرم. دو سه ساعت مونده به اذان صبح اومدم هرم از دروغه ایه دو سه ساعت مونده گفتن اینجا مثلا یه ساعت مونده سه ربع مونده به اذان صبح درش رو باز میکنم منم درش بسته است همون موقعی که من رفتم شاید اون ساعت اون موقع رونق داشته الان مثل الان نبود که چهار هزار نفر پشت در خانه این دختر در رو واکنم کنم بره تو چهار هزار نفر اون موقع شب تو کشور سوریه اوتوبوس ها که رفتن میدن اوتوبوس ها یکی یکی میامدن مسافرها رو پیاده میکردن اینا میامدن پشت هرم حالا تو اونا وزیر بود <تصفح> مثلا دکتر بود دو تا دکتر که خودم هم بودن زن و شوهر هر دو دکتر مهندس بود تاجر بود فقیه بود فیلسف بود نویزنده بود همه اینا آمدن پشت در یه دختر سه ساله این دروبا کنه هیچی به بهشون بده. <تصفيق> به این سه سال چقدر برکت داشته؟ حالا که ست سال عم میکنه، هیچ اصلا هیچ عط... به زیادی نیست دینه که این اون چجوری مصرف بشه چجوری استفاده بشه به زیادی نیست. بعد از خدا برکت بخواد یعنی این ماه رمضان ماه پربرکتیه زیاد نی که سی روزه سی شبه اما از هزار ماه بالاتره همونسا اینکه اسمای شب قد شب چیه تو سوره دخان خوندین انا انزلناه فی لایله مبارکه ایش مش قدر یس میشم مبارک هست میگه ما قران رو در شبی مبارک نازل کردیم آقا میگه چند ساعته این شب حالا مثلا ما تابستون قرار گرفتیم شش هفت ساعته این شب اما از هزار ماه بالاتر این برکته به دیهاتی نیست میگه میگه اون یه شب اگه تو عبادت کنی از خوف خدا عشق بریزی میتونید به اندازه هزار ماه برای شب اول قبر توشه برداری. امشب فضیلت شب قبر را من یه شب گفتم خدا به دهه آخر ماه رمضان قسم کرده متاسفانه ایرانی ها دهه آخر رو ول میکنن میرن اون اصل مطلب رو راه میکنن میرن پیغمبر وقتی که به دهه آخر رسید، اصلا میامد متکف مسجد میشد میگفت اصلا از مسجد بیرون رفتن سلام دهه. اصلا کاملا میمود رخت خوابم هم جمع میکرد روز و شب سر از پانه میشنه میگفت این دهه دیگه دهه نیست که آدم بخوابه دهه نیست که آدم قفلت کنه خدا رحمت کنه آستالی آقای میرهادی رو شون مناجات میکرد تو این مسجد امین و دوله مالا اونم اینجا بود. این شبای آخر که میشد خلوت میشد مثل اون شبای اول ما ها دیگه تنگ میشستیم عذیت میشدیم شبای آخر یه گشات میشستیم دیگه خلوت میشد بعد این خیلی سوز داشته آتیشی بود می اومد بالا منبر میگفتش که اون پشت میشست ما به قبله دیگه ما خوشت ما بودم آخرین نفر اون میشد ما هم رو به قبله اونم رو به قبله بعد میگفتش که خدایا همه کارشون درست شده رفتن <تصفيق> میگم ما چار پنجتا بیچاره هم <تصفيق> میگم خدای کی نوبت ما میشه کی این سراغ ما رو میگیری <تصفيق> اون میگه همه گرفتم رفتم دیگه بیاموسه چی گرفتم که <تصفيق> کارا درست شد گره ها باز شد <تصطحت> <تصحت> رفتن اون ما پنج تا بودی گفت خدایا ع نه تو چیزت قبل همز هست هم دیگه فرج و چکرید میگه پس کجاست که تو میگی تو مارم از اون فرج من نزدیکه که؟ رحمت و کل تو چل واسهه کجاست که تو میگی رحمت من واسعه است؟ شامل همه چیز میشه؟ چرا شامل ما نشد اینه اتایا و کل فاضله, فاضله. اینه کرم و کیا کریم و کجاست این بعدهای نیکوی تو کجاست گفتی هرکی مارم از اون بیاد من دعاشو مستجاب میکنه؟ کجاست گفتی هرکی مارم از اون بیاد دیگه کارش درست میشود تموم شد خودشم بگمیشتم همون شو امشب آقایون فضیلت شب قدر داره اهل سنت که اصلا میگن شب قدره شب قدر یه شب دیگه سه شب که نیست لیله القدر لیالی قدر غلطه که میگن لیالی قدر ما نداریم شب قدره این گمه اهل سنت میگن امشب حالا اگه ها نمیگن امشب اما میگن امشب فضیلت شب قدر دارد. آشقه با سریعا گفته کمتر از شب قدر نیست. قدر امشبو بدانید. تراز شب قدره. این دهه دهه خاصیه. ولی خب به قول آستالی آقا میگه بعضی زود کارشون بروسه. الحمدلله ما رو نگه داشتم. نگه دارن خبا. به خدا نگه... دوست داشته باشه نگرت میداره میگن ماله اینو شب آخر میداره میگن خدایم میدی بده میگه نه میخوام فردا شبم بیاد من خدا بود من دوست دارم صده هاشو بشندم اصلا دوست داشته باشه ما از اونم نمیده میگه بذار شوالم بیاد دو خدا دوست داشته باشه نگرت میداره معبت لطفه یکی آقا کادو میده ب... ایدی میده به هر کی میده میره اونایی که دوست دارن نگه میداره بایی <تص> میگه تو رو میدم عجره نکن میدم رو. میگه دندون رو جگر بذار یعنی چی؟ دوست دارم پیشم بمونی خدا کسی رو دوست دارن شده اول میدی میگه بذار این بره این میگه معتل ایدیه میدم بره تا خوش به حال اونا که عیدشون هم بگیرن نمیرن خدا خوش به حال اونا باشه هم بگیره میگه من یه موی تو رو نمیدم به همه اینا ما از تو نداریم به غیر تو تمنا ما خودتون رو میخوام حلوا به کسی ده که محبت نچشیده خوش به حال اونها خوش حال ما که هنو می آین میخواستم دو تا بخونم وقت گذشت حالا فردا شب اون, کس اون یکی رو می خونم اینا, اینا همش حیفه من به خدا حکمت هامیز این جملات حیفم بیادم اینجا توم توم بخونم ترجمه کنم برم جلو اما نمیدم دیگه دلم رفت اون مجلس قبلی یه جا دیگه دلا رو بردم خیف رو کردم اینجا بیام همون میشه. اما الان میبینم دلم رفت در خانه شش ماهی عبیقی آره امشب باب الهوائه بح بح بح اشالله پایین پا مرحوم دربندی از اون آشقای علی عبدالله بود مرجع بود و مجتهد بود صاحب رساله بود مقتلم داره تو حرم امام حسین هم دفنه حیلی آغتس اونجا دفت باشده چند قدمی امام حسین دفت مرحوم دربندی از اون اهل دل بود عجیب بود بعد اهل بوکا. من تو حالاتش میخوندم میومد زریع امام حسین رو میگرف گریه میکرده می گفت حسین جان یه خواهش بقدر دارم از شمر نگذر می گفت این دلهای ما رو به آتش کشیم گای طلبه ها بهش می گفتن بابا چی میگی؟ اگه... مگه؟ خب شما حسین رو نشناختن خب شما این رو خب اگه گردنش رو کچ کنه دوبار دیگه قلط کردم می گفت شما رحمت اینو نمیشناسیم شما بزرگواری اینو نمیشناسیم شما نمیدون این کیه مگه باباش نگفت شب هفت امیر المومنی نمید. مگه باباش نگفت به بچه هاش میگفت اگه زنده بمونم از ابن ملجم میگذرم همون عضو نکرده باعتا عضو نکرده میگذره، مگه این،, مگه این پسر همون نیم اگه دو بار بیاد قیامت کرد بگه جون بگذر <تصفيق> این دربندی بود یه روز داشت گریه میکرد یه مقتدم داره حالا اسم رو نمیخوام بیارم این داشت گریه میکرد آتی شده بود یه دعاتی دید این خیلی احترام از مراجعه کربلا بود دید. بند خدا دعاتیه اومد گفت حاج آقا سلام علیکو اینم وسط گریه گفت سلام علیکو گفت محلان یه ماه کربلا همه قبره رو من زیارت کردم اصقر کجا؟ هست <تصفيق> مرمه بپرسم علی اصقر رو زیارت کردی من چی بگم علی اصقر کچه هست مرحوم دربنه دیوانه بود اصلا دیوانه شد مثل بارون گریه میکرد من هم نمیدونم من مقیم کربلام نمیدونم شب خواب دید امام حسین و امام فرمودن دربندی چرا نگفتی از رو سینه من <تصفيق> امام زینالابدین هر کاری کردید باباش تو قبر آروم نمیگو. آخر این بچه بی سر و آور گذاشت رو بدن عبیقی فه <تصفيق> فه فه فه به اسقر چی بگم ببینید قبر حضرت عباس کجاست کنار الگمه قبر علی اکبر کجاست پایین پا قبر حبیب کجاست قبر اسقر کجاست باز بگم محل شهادت عباس کجاست کنار الگمه محل شهادت اکبر کجاست اون مختلی که محل شهادت اصقر کجاست؟ تو بخل عبیت داریم این تو آغوش عبیت داریم به دم المظلوم الم... شب آخره دیگه شب 27 دیگه شب قدر که نداریم ما این شب میگیم به دم المظلوم به دم المظلوم خدایا به اون خونی که مظلومانه ریختن به خونی که مظلومانه ویخته شد به خون مظلوم این مظلوم کیه؟ این ازخره عباس می جنگید شهید شد عباس می جنگید میکشت کشتنش اکبر میکشت کشتنش قاسم میکشت کشتنش ازخر من کی به زبان آمده هرمله با تیر و کمان آمده این کی رو کشته به کی تیر زده به کی تعرض روز کرده ها آبش نده برش میگردونم چرا با تیر میزنی حالا با تیر میزنی چرا سه به میزنی ببینید آیون جمونا ببینید جمونا میخ میخ باید با تخته تناسب داشته باشه هر میخی برای هر تخته مناسب نیست میخ اگه مناسب انتخاب بشه سوراخ میکنه سوراخ میکنه اما اگه بزرگ برداری جر میده پاره میکنه دو به ۸ تا